سیر رسول <سؤال> الله را آله صحبت از جب کلامی بود که به حضرات اخباری ها نصفت شده و بعد که روز شروع به خودن بارات خود مرحوم محبب استرابادی محبب استرابادی, استرابادی مولا محمد امین برد شد که این نزایی که بعد از محبوب شیخ خانده که آیا کلام این نازر به من اصقراس ارد پیدا میشه یا من اکوراس که اینقدر خود نیست؟ یا به همه دو اجمنون مستقابلن از در زواجه با تمام در اعبارات ایشان مزید میشه ایشان این مماهات نداره تا قرد از پیدا بشه اون خود جسدی ها اصلا نظر, اصلاً نظر ایشان, نظر ایشان که اون که با انوانه همهات اصولی مطرق بوده در نمان ایشان این از آن نیست خلاصه شما که خون بیدون یکی شاید به بحث هایی که ها راجع به اخبار دارن و تقسیم بلگیه هایی که از زمان حلانه شروع شد یکی هم راجع به افاس اصولی خلاصه کلماتیشون دنبال صورا و کورا و این حرفاتیشون نیستن بسید شون به هر حال مطابقیشون کنده شد بخش شد که مردم توضیحاتی در حد اجمال داده بشه اولا خب انسان رو باید در همه احوال در نظر بگیریم که در این کتاب فوادر بدنی مدنی چیزی در حدود 400 سال قبل بوده و خیلی واضحه الان اعصابیان کسی ان اعصاب حرکتی فقط اون یک دوره فوادر اصول مضمون نوعی که نتیجه تحریقات اصولی شییه. در این زمان ما نگاه بکنه با تحضیب علام مواقصه بکنه تفاوزش از زمین تا آسمانه یا با کتاب از سنت مثل احکام آماشی خیلی اونتوی را حتی مواقصه کردن اگری با نظر شد این آن که به ایشان در نظر که ایشان آن وقتی این کتاب نوشتن که واقعا کتاب شیعه در اصول تقریبا این هم نباید ترکیه این سنت بود و ایشون میخواست این راه درست نیست البته خوب خوبی شده مرده چون رفتن که رفتن کار علمی یه مردان خواب و یه و یه دو لرکان که آنه علمی یه مردان هم داره الفاظ دره رو بودن و حالا اونها که مناسب با حجوم با حجوم و تندی و اینها باطل اینا را احضا به نیز اینها تحریه ایزینه و این همه همه کنم اطلافش بیده است از چود برازشون همه دیگه یکی کمپون دیگه روز بلگیشون باید حمله کردن به نظر ما حقه در مقام عبارت از این از کنسای تحریه سای کنند مساقه رو دور از این تنبیه ها تفسیر و تحریه و احراق درست رو اراده بده احجاری موقعی حقا نده ما برای که نمونه های از کار روشن بشه شروع کردیم یه مقدار از نمونه هایی که چون گفتن به اقراض کردن به اصوله ها مثال شروعیه یکی کمیم ترجیحات بود که دیوود ها خوندیم از کردیم این ترجیحات ناشتا دیشنگی باشه که دیوود ها آمدی از محاضی علامه کنیم از من در ذهنه که نمیشه. مواد رسول داره و تحضیب رسول هلات رسول و نهای سه سه دوره در مرحله استلاح شمیده بزنگه در است. سه دوره ایشون اصول نمیشته ما دیوز از موادی ایشان یک کتاب مقردماتی ایشان یعنی یک کتابی که وارد پشرنه باشیم یه که از مدامه مدامه از مبادی نهبی شد این ترجیح و حالت همه حالت همه حالت و فسیقه ها و عالت ما عالت ها و و اینها رو بیدوز کنید این هست در کتب از ها کار کرد و این کار نیست و شایده بشید بود واقعا این حجوم های مولا محمد امین افترابادی نتیجه دار که اینا شده آشه ها از اصول ما شده یعنی پس مثلا، الان تو رقصاری رو این ها این بحث و الان یا که یا خود برقومستان یا ناغه مقدم مقدمه مقرر مقدم از این هر دیگه آلوان دیگه, دیگه همون گفته نمیشه شده این حجوم های بخونده مولا محمد امین است. ما بحثمون اینه که با حجوم کار درست نمیش این خلاف احلبه ای این خلاف متواصل این خلاف مذهب احامی است باید هر ما نمیشه باید به واقعیت های علمی با تحلیل متعصد ایشان توی این مرحله یه مجزدیشون یک یه به تحلیل نزن، تو هر این مسئله خیلی که ما رو نگاه میکنیم حالا که ما این نگاه روشن یکی که میبینید که بساق یه مجزد رو به باشن و ببینید ایشان مثلا حال فلسوله از طرف ایشان ما در و اصولی که قبل از علامه داریم مباحث تعارض به دو شکل آمده یکی در مثل آمده که اگر تعارض شد چیکار بکنیم ذریعه تیل موتست من چگاراً از کردم مرحوم تیل موتست در ذریعه کل به چند سکره خلاص چند سکر میگه ما که قاعده به حضرت پس تاروز مدرد. این چند سر کنه مدرد دیگه ترجیح به چی باشه به چی نداشه چند سر که ختمشی نکنیشن اون شیخ در قده تاروز درداره یه در از ها تو یه راه دیگه, دیگه, دیگه من در وقت تاروز این شاده گرام مثلا شیخ هیچ مسأله درباره امور نهنظره نشود که آن ارکان درباره امور در حال است، اصلا نشود. من هم در کتاب هم اشاره هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم و هم هم هم هم هم هم هم هم کلن از رسول الله نعروضه شد یه موجودی رو برای ترجیح این موجود یواشه آشت انسان جنب رو باز قبول توسط اندامه در کتاب ما رواج شده کرده این در میان اصحاب ما آمد که دیروز خوندی، نمونه شد دیروز متعرض <متحدث> شد خب بعد از علامه مثلا فرسنده 200 سال 300 سال مولا محمدر می استرابازی حمله میکنه که این راه درست می خوب و تحلیل بشه با حمله کردن و سر کردن اصلا درست می شه خب از زمان قبل از مولا محمد این معاصر ایشان مرگومه تقویر معاصر ایشان من هم صاحب معالم در بحث تارس اشاره میکنه استناد استنادن رواسن ضعیفه که مرادش هم این رواسنان به باشه حالا بردهای یواش شمایش در کسور برس ما روایت عمرد نهندله و عظمان مورد جهاز جام می افتده چون ما اصولا در میان همس خواهر ما روایتی به جمع جوری روایت عمرد نهندله در تعاوض و ترجیم نداریم ازا محور برس عوض میشه و میره رون روایت عمرد نهندله و مورد جهازی که در اون جهاز خب این ترکیب مرکشه ها مخصوصا در این زمان هم تقریبا در کساب اینا محوال عالی حدیث و از زراره نمو کنید کنید ها داره که شبیه همین روایت اما از مهنده هست ترکیبا ترکیبا دیاره پسی بیشته یا کتاب و اصولی ما با این بحث مفرک میشه روایت مفوعه زراره به اصطلاح خودشون و بعد مسئله این که کدوم را قبول بکنی و بخش که در و این که معجهات منصوز در دراتها نهنزل محدوده خب این معجه ها دیگه در حضاب علامه آمده خیلی زیاده و چه کار بکنیم آیا تهدیه از معجه ها بشه یا نه؟ در پتر کنیم اینا همشه این نمیشه نسبت داد علمای های معلومه که اینا دین کرده و حرف های خیلی خلاف اهل احله رایی نه بحث علمی صحبت علمی این صحبت علمی باید مطرح بشه و میشه یابی بشه و تفصیل و تنقیل و کجور بشه بشه این که شما بیهن بگیم این حالا بازن تحقیل دین است نه این صورت نبوده پس ما در بیانه اصحاب ما از مثل سید محسزا که از این بحث و محسز نکردن تا نست علامه که این از ها بوردن تا برگی ها که مراجع اینجا است قاعده مقبوله را در اندازه ها که مراجع ها سو مقایسه کردن به مقبوله و مرکوئه ذراعه و این رشته علمی همینطور تا زمان ما ادامه داشته و این وجودی رو که مرحوم علامه طباطبایی در ابن هشام اواخر احصام او با عنوان مرجعه وجودی دیگه غالبا در کتاب متحصیر مثل تو به باید از و این از کتاب و به عنوانه مطلب نیست این طور روایت از هزا اشیاء و اونه این چیزو در روایات ما وارد نشده رضا این اصحاب متأخر غالبا این جور جهاز خب طبیعتن علم هم سرزن علم یه جوریه که خودش خواهی نخواهید جروع میره پیش از داره مساله دوچنید به نظر ما با این مساله بیشیامی های همیختری دوشه اون جدا که شده زحمت کشیده شده خوبه اما خب اصلا بخش علمی و حرکت علمی توفق فرم نمیداره مثلا همین بخشی که ایشون اعتراض میکنه که علامه همه وجود او در روایات نیست من دیدم بعضی از آقایان اسم همه ببرم تقریبا به این تمایل داره اما چیجوری که الان مثلا شما رضا میاد این ترکیه هایی که علامه ذکر کرده همطور که ملا معمول امین استرابادی فرموده نه در کلمات و قدم اصولین ما آمده نه در روایات آمده به اونها هم تقریبا کلا ترد شد اون رفت همون درواز از نهند تو ما که این اینجور نیست که حالا تخریب دین باشه یا مثلا وجوه باطله باشه خب من هلا یک نکته به همینجا ارز میکنم که معلوم بش بعضیها دیدم که چون این مطلب در این نوشته ختیس چاپ نشده نسبت بدن بعد بن نه ه مثلا چاپش نکردن قبول ندر نسبت نمیدم این اینجور مثلا تصور کردن در یل در روایت عمر نل وقتی صحبت و خذ موج به مشر مشر ب صابق ف موجله لاره بفی این م موجله لاره بهفییل رو اینجوری مرا کردن یعنی اون رواض که مشهوره اون که بیشتر در کرده نسبت به اون رواض دیگر لاره بفیید این لاره نسبیه این روایت، مثلا اون رو با لیگه مشهوره واسه این یک مقدس رو در کوفه از فرن تصویر رو آزامان این طوره اون میاد خدمت امام صادره در مدینه که آ در کوفه از شما مختلف نهارونتشار کنید حضرت میخواد یک راه حدیدشون بدن اول میگن نباه بکن اونی که زیادتر نهاره کردن اون حجت به اونی که کمتر نهاره کردن و خود به مشته رو بین اصحابه و در اشتار در بسه این ده نفر محضر نه دو نفر و خب اون ده نفر لاره اینا این فعلا مجمع علی لاره رو اینجور معنا کردن یعنی اینکه مشهور است نسبت به اون غیر مشهوری نسبت به اون لاره بفید پس این لاره چی میشه؟ اضافی میشه دیگه خب همین قائلی اگر لاره رو اضافی کردید این دو میلیار ترجیح قرار یعنی هر دو خبر داشتیم یکیش نسبت به دیگری لارد نصف خانه فیرنسه یعنی این دو خبر جوری باشه که رید به یکی نسبت به یکی کمتر باشه این لاره مطلق نیست لاره فیه اضافیه این خبر نسبت به اون یکی ریبش کمتره لاریفیه نسبت به اون لذا مثلا همین قائد میگه است تعدیب بکنیم حالا مثلا میگن 3 تا 4 تا 5 از مردجه ها در کتاب چون مطمئن رویسه اومن تا 5 شای از مردجه ها نهزه رو آمده لیکن از این زابطهی ای که امام فرمودن فهم در مجموع لاریفی ما میکنیم هر وقت دو خبر متعارض شدن و توانستیم کاری بکنیم که راید در یک خبر نسبت به اون خبر یک کمتر بشه این خبر نسبت به اون یکی لاره بشه بگیم اونجا ترجیح داره پس ترجیح داریم به کل روشه که یوج و این خبر مثلا به خبر دیگه لاره بشه و اگه این باشه هم وجودی که فرمودن میاد میادیده یکیش احلم باشه حرفت باشه پیش باشه اما حتی بیدیوز بیدیوز بیدیوز بیدیوز بیدیوز با که دیگرست کنید میمونه به خدا بسید اینه که مرگون ملا محمد امین استرابادی اصرار داره که این ترجیحات ترجیحات زمینیه هستن اساس ندارن؟ نه در اون هم میشه اساس تصابه کرد. این لاعقل میشه این طور گفت لاعقل حرص میکنن لاعقل میشه این طور گفت اون حدی که میشه این تخریب د بذات که خلاف متواتر بین اذهام و لا این حد نیست حالا قبول بکنید من این بحث دیگه اما دیگر لا اون درجه ای نی... راستم از هم حق من تاریخش رو از عرض در کتاب های قدما قبل از علامه نهاده بعد از علامتی که که مدتی بوده که تقریباً یه حدی در برخی کتب مفصل بوده شروع این بحث مقرر و ناقل و... و مقدم مقدمی ها ناقض برای تقدیر ناقض برای مطلب وکن علام شما این را در رسائل نمی بینید یا در کتاب دردی مصد خواهد ممنون یا تبرات آزی نمی بینید. این درسته این مخلط من نمی کنم منکر این مخلط بشه وکن اینجور نیستیه کلام علام رحمه الله و تصور بشه تقریب دین است و نابودی تشعیه است و مخالف ضروری است و اطلاق و حکم عقل است و نه. این خور رو هم میشه درسته شاید با استناد به خود روایت همون روایت به اندر مجموعه داره گرفی آن توضیحیت هم داده خب این میاد دیگه وقتی که این دو سال تبر شد این یکی نستاد بون یکی لاحقه مثلا این پنج شده همونتران باشت چاپ حالا مشروع نید هر دو می بخوا بگیم یکیش مشروع کش شازد ساز، یکی هم نزدیک مشروعه خب میگه این یکی نستاد بون یکی لاحقه دلن. اگر کسی این گفت حالا کسی آمد این روات اومد رو قبول کرد و این تفسیر تقصیر کرد آیا این باید تفسیر بشه تکیر بشه <تصفح> این عادت بشه. تخریب دینه یه بحث علمی شما میخوای بکنی اون بحث علمی که با این سر نمیشه نه با سرزده های ایشان میشه نه با اون حجوم که دیگران به ایشان گرن بحث علمی, علمی تاریخ داره. زواله مختلف داره روش داره روشمنده راه داره هدف داره قایت داره راه روشنی داره این طب نیست که با این حرف ها بخواد بشین این راجع به این مطلب. پس ببینید ما الان با این ترتیب به شما نشون دادیم انظر تاریخ فکر شیعی اصول شیعی که این کنزیه ها تحلانه آمد ریشه در کجا بود در کتاب اهل سنت بود اهل سنت را هم گفتید چرا گرفتن؟ تو اهل سنت در اصل تاروز در سنت حدیثتان دارم چرا که به ترکیه اون در اصل تاروز دارد پس در اینقدر اهل سنت در سنت از قوارد حقلی مثلا یه دوست خلال اینجوری بود این رو میشرفن میسیم اعتبارات این اسم شو گوشه آیه استرابادی اسم شو گوشه اعتبارات اخلی وجوه اخلی خب اینا میگه اگه دو تا خبر شدی که رواتبش بیشتر بوده که رواتبش از حد عمر بود خیالم متذیه بابره با تقوا زاهد است می میخواد اون یکی هم فاسق بوده میگه در این که این با دقت مثلا عبدالغنی باید در روایت همین عمر بن هم داره خود ما یقول از اون در ترجیح بین نه نظر روایت چون عمر بن حنظله مقدارش به بسطیحه یه مقدار داره روایت شده خود به ما یه بود ما و مال و ما و, و, ما و, و, ما و مال و و ماخل یک هم که از حدیث خوندیم از حدیث آن خوندیم مال راویه اونی که در برایت اون هم از مال خب ممکن است بگیم که حالا اجمالا یک نوع ترجیحی باز اونا از آن عقلی رفتن حالا عقلی به صرف در بگیم خوهر این در کتب چون اونا هم دوزه شد یه یه علمی شد در حوضه ها که خوندن علمی شد بعدما هم در حوضه شیعه شکار شد ارز کردیم اما اینطور نیست که ما بلیم حتما این معنا اللهم رحمه الله با اینکه این تصیبی که اللهم گفته و از خواهرش از از او خلاهر اینطور دیگه اما اینطور نیست که این اللهم مخالف با حب میکرده علامه کرده علامه خلاف شیعه این نیست اولا موادس و اصولی در آن ما آمدن که این مرگومه سمیان روزی نمیشه موادسی به علم حالا تفسیر علم و این ها یا, یا علوم ارتباعی سنفرگی از علوم با اون باشه و که چی نیست ما در مسائل علمی این چون نیست که اون بکن از باست مرموم های محمد امین استراغاتی این رو توضیح ندادن بنده استراغات اصطورت چند با توضیح دادن درسته این محصول از اواخر قرن دوم شکل گرفته بشه شد و که این که را نهند بعد پاک این محصول پی شهر سنده به شکل نهایی شد، دارای دو بحث اساسی بود یکی حجم به معنی مسادر تشرید. شیخ گفت یعنی طرق وصول به اون که اون دلیل هم میرسه میگوز. وقتی این گفتن اجماع و جرت یعنی اجماع از مصادر تشریع کتاب از مصادر تشریع سنت عرف ما مصالح مرسله ریاض اینا مرادشون اون چیز تشریعی بود به اسم مصادر تشریع موقع هم بخش ظهورات و حصول مراد ایشان وجوبه مراد این سی غیر از داروشو بکنه شما هم نموقدمه باشد حجر حبر واحد این هم اصولا اصول رو به دو بخشی از حجت تخصیل کرد حالا من با قسمشان حجت سبوتی که همون مسادر تشریعه و در مقافل حجت اثباتی که شروع من کرانا عرض کردم در مسائل حجت سبوتی بلی که به ستنای کتابه سنت اختلاف ما با اهل سنت مذهبیه یعنی کسی می گفت اجماع که آقا این چون نهو شیعه این اجماع رو ما هم. اجماع قبول نداشت اگر می گفتن قیاس قجته این مذهبی شیعه قیاس رو قبول نداشت خوب دقیق می از اما در حضیت معنای دوم خوب ده. حجت معنی دوم اختلاق ما مذهبی نیست اشتباه نشه کن حجت معنی دوم مثلا سیره فرداز بردور میکنه توی شیعه هم ازدهی موزن میکنه ازدهی موزن نمیکنه توی حرفی هم ازدهی موزن میکنه توی شافی هم اینطور نیست که مشکلسه مذهب بشه استثاب در احکام جایی میشه یا نمیشه تو شیعه ادهی می موتن میشه ادهی می موتن نمیشه تو سومنان ادهی موتن مشخصه مذهب نیست بله در میان شیعه استضحاب مشخصه اتباعی ها شد تلوپه نمیشه در میان شیعه شب این خوب دقت بکنه اینو رو مرحوم الله هم در دلوم نیستعادی توضیح نداده این اینطور نیستی هرمز علیه تو اصول آمد این به چه مشخصه مذهب که هر کسی یک چیدی رو گفت این گردی خارج شد مذهب خارج شد این ترجیحات ترجیحات مشخصه مذهب نیست دفت بکنی ترجیحات مشخصه مذهب نیست که اگر هنم در کتابش این در دوشت شد نقطه یه که اگر هنم در کتابش یا اصولی این مبارس و اصولی حصوری و بوده پس این از مذهب خارج شد بله قیاس مشخصه مذهب نیست ازجماع مشخصه اینا اشتباه شده چون درده خوبی هم گفته بخشه میشه میگه قیاس خودجه یا نه بسرس بس خواب خودجه یا نه زواهر کتاب زواهر کتاب جوز مشخصه مذهب میست دقیقه بگونه ما توی هم داریم که زواهر کتاب اطلاقات جقبه بگونه این جوز مشخصه ای مذهب نیست اینا با لحظه کتاب در این استرابابی ردیف بندی میکرد جدا میکرد یک مشخصه چیز اگر حضام قاید بود که خیاس حجت ببینی از مذهب خالصد اما اگر علاوه ترجیحات بود امروزن ترجیحات مشخصه مذهب نیست ولو دو این اصلا باقید که آرز نیورده که اوزید ترجیحات نیست، شیخ که بعد اما این مشخصه مذهب نیست نه با ماها اصولی نه. نه انزیو بی رو اشتباه نکنید. نو مشخص در مذهب نیست. اینا شهره مذهب نیست. دقت می‌فهمید؟ و این طور هم نیست که باطل صرف باشیم. حالا نگید اندامه. حالا فرض در اول اینکه علامه تقلیدندر اندر همه مسائل با اردو بزرگ زول رو در آزمون. الله تعالی بزرگوار اینو. اندامه اعتقاد پیدا بکنه که مشکل نداره که. خلاصو اون راه اعتقاد پیدا کنه. چیزی مشکل خاصی نداره. این نه سرسوده ایجاد میکننه بعد از کردم بعد از علامه هم در میان افراد بعدی در همون ترجیه ها تو از را دلگاه استفاده کردن رو روز یه مجمع که یه مشکلن روی که گفتم فیلم مجمعه علیه لاره بفین ما می میکنیم هر جا دو تا خبر معارض باشن احده همان به جهت من از جهات به دیگری لاره بفین در قیاس به دیگری لاری بفی اون لاری بفی هست میکنی پس از مرجعات دیگه در خود برای شما که آمده ما تعدیه میکنیم میشه تعدیه از مرجعات منصوصه این شما شده داری من میمکنم چه سختی در این کار هست خروج از دین این صحبت هست کنم ما, ما, ما خوب گوش بکنیم خروج دقیقا این صاحب داشت این کلمات رو وقتی مولا ما حاج علی نژاد ایشان شکی فوار به تاحنود یک اون روز بود یه روز مثلا حرکت آواز یای علی یا شیخ احمدسر هر وازومی نگاه انصافش بس, نیماز بس نیماز. قبول بکنه این توقعات ایشان ایشان 133 یعنی ممکن الان 1400 درست 4 تا قبل ایشانه ما سال علی خود خیلی نام خود را پس ایشو دل مکن جون مادی نمو بزنن توی اول دلایلی مجیتی و بعد خود مربی شه گفت که یه باگایلشونو نام می‌ذاریم. چه خوب راهه. تشکیلو در و نظام اینا دنبال هم وصلن. مثل شهور اینا میتونه قبول کرده. سر این الله هم. مولا محمد اون هجوم‌ها یه مقدار درست بود اما علمی نبود. خب این با تحریب بشه، حساب حسابش معین بشه. این در آخرش هم نه "رعله مؤمن هذه مظالمین" تنظر و هم من تأخذون دین اتنم. این صحبت بقید موزیما شاید سننار که نبید صحبت دین بود این با تحلیل علمی می شد با اینجور صحبت ها مثلا حل ده. حالا من خودم توضیحی که به ذهن خودم آمونم یعنی کارهایی که مثلا در این آونه اخیر در اصول شده من اجمالشو عرض کردم. نصف دهن سنت که توضیح شد. و البته اونجا این مشکل رو داره یعنی یک جواب علمی باید اهل سنت داد ما معتقلیم اهل سنت مادان مرجح منصوص ندارن بخواهم به حضر قوائد حقی مرجحات رو سکنن با قول خودشون یا قواعد و قلعی. این خیلی مشکل از در فنی حالا کار به هم نداریم یعنی این تحلیل علمی باش مساعد نیست چرا؟ اگر این مرکجه ها تو از ما شواهد بگیرن حتی بدی نیست مثلا یه شواهد بیشتر از دارون حتی بدی نیست اما اینا قاعده به حجیت تعبدی خبر کسی که دوباره حجیت تعبدی خبره به شواهد کاری نداره یعنی یک نوع مشکلی در میان کلمات احل سنت هست در این جهت. حجیت تعبدی یعنی چی؟ یعنی من عرض در حجیت خبر؟ موانی مختلف ریزو از آبتان نیم خواهدش کشم سه تا این سه تا مقنوع اساسی که اگر میتونیم فکر کنیم توی این سه تا فکر کنیم یک خوجیت تحبودی همه بردن معیار شیرکان یا اون بحثایی اونجوری شمه بردن معیار معیار در خوجیت تحبودی اینست که در لسان شاره یک معیار ذکر شد تبقیه اون معیار هر خبر اون معیار مثلا سنیه ها میگن محیار اداره اینجا ها کن خواست باید این هم هر خبر رو که آدن داد شما تحبت داریم به قبول ما دنبال وصوق و شواهد وصوق نیستیم شما تحبت داریم به قبول آن که این کنیم به ساقت داریم خودم الله محمد که پایده ایشون هم به صحابت قبول میکنه که ایشان تو بخش حضور خرای سایه کلماتیشان در حده میکنه ایشون مصطفی در زبارات اهلویز خبر سقا بوجهده و احتیاج به اجالت نیستون اهلویزان از اجالت نیستون <تصفيق> به برای به خاطر اصول هم هست از بعد ها مثل مرموح صاحب, صاحب, صاحب بعد ایشان معتقد شدن هر خبری که در یکی از خطور مشغوره باشه این حجیت تعبودی داره امام فرمودن به اون قبول رو من دیگه مساله و انزمه کنم اون اشمالش پس هر کسی که قائل بود که یک باشه در خبر اون خبر اینه این اون خجیت تعبودی خبر خب طبیعتاً بر همین معنات تا آرز معنی معنی داره چون معنیش چیه؟ یعنی اون مهیار در دوست خبر هست دوباره میگرد نمیسوزن اون میگه تاروز اصلا ترجیه هم بر همین معنی است ترجیه در در, در ترجیه معنیش که کن دوباره دنشی نفسه حجت یعنی اون مهیار روزاره زاره فقط یکی یک نکته ظاهد داره مقدمه اسمش ترجیه پس هر کسی که گفت تاروز باره قال حجت تعبوری خبره شد هر کسی گفت ترجیح داره موارد مفتی از تجربه خبر باشه. روشن. دوم چی است؟ به وجیه این مسئله را چنین ما با خبر رو که می‌بینیم شواله رو اقامه بکنه چه شواهد ببینیم خبر بود این شد. هم شاءالله واسه مقبول این در هم بشه. معموریتم ارزش داره 90 درصد، می‌خواد تمام شواهد 100 درصد شونه اثبات اون ده برای که محیر برگیم من در درسته برسوب و اسمی که بیگه نه خب اختلاف دیگه رو این هم راجع بیگه این قسمه رضا که تیگه و روجیت خبره اصلا تعارض میشه اون داره چون نمیشه بین, بین اغلاد دو خبر مختلف با همش حجت باشن یعنی به عبارت اغلاد تعارض با قبل از حجت بشه تعارض نهید دو تا با هم, هم اما نمیشه دو تا حجت با هم متعارض باشه همین حجت این بار اول تعارض رو حل بکنه بعد از هنده تعارض احد اما حجت ولی بیرکر با بیرکر بیرکر بیرکر حجت نداره یکی رو تقدیر کرد همون حجت این هم مثل و نظر بنابرای مثل که حجت اغلالی به نظر ما اصلا تعارض و ترجیح معنا نداره خالی نخالی اون چی که در اینجا مفرکه در دوست خبره کمان یکی خجته یکی لا خجته اده از اصولین مترسران از مغمه آزیان این بحث داره که بحث تمیز و جهن الله و غیر از تا آرز و ترجیه درست هم و بحث دقیقی دیدم از درست هم هست خیلی هم دقیقی نیز روشن مبنی سرمون مبنی کسان خبر رو نمی نه اغلاعی نه اینکه خیال که نهی که خود یا خب اینو بس در کار بکنه برای شون ترسوب میگن رسوق به حکم مهمه اصلا خبر ارزش دیل نداره نداره. اونو که در خبره اونو ما بازش رسوق بذاره کنی. نه؟ سلیموتو. سلیموتو. سلیموتو از کنیم نه نستر مهمون رسولی موت سلی موتان رسولی از هست که که در مقدار منکر که خبر بودن اینه در حیرت دو جورن امثال سری موزد از قسم سه بومن شیعه حتی قومی ها از قسم دومه بومن مثلا قومی ها مرادشون از قدیت و اغلایی یعنی و که متشرحن مشایخ و بزرگاه اما هم است شیخ مفید که قدیت و اغلایی میگیره قدیت و, و اغلایی به ما هم اغلا من اختلاعا از پر یک فروضی داره من دماغه به خب طبیعاً کسانی که قائل به حجید خبر نیستن خانی نخواهی اصلا قائل به طاروس نیستند. اوازت به موردان برای کن خونکی برسکر این محظم های ما یا محتقل به حجید خبر و قدائی بودن یا محتقل به حجید اصلا نبودن مثل سید و محطسان نسی ابنه نویز این اصلا محتقل به حجید خبر نبودن لذا اصلا پی، پیش این ها تا این نه ترجیل موارد از اولین بار شیخ سوسی چون اگیمالا قائل بودگیت خبر شد از بسر مبانی ایشان که بیمشی واضح واضح, واضح توانه ای افتاده لذا ایشان بحث تا و مفصلتر از سر محضره این از زمان شیخ توسیش تو شد زمان املامو دیگه خبر قبول واقعا هم که مشکلی داری قبول روز جه خبر تحبودی خبر این خروج عزبی نیست خب وقتی که ایشون قبول کردن خاینه های فارض مثلا میشه خاینه های ترجیح مثلا میشه خای مثلا میشه پس این به نظر ما باید نیشه بشه اصلا این مرحله ترجیح اولا محترین سربودیت تحبودی شما در خیلی از مسائل در روایات ما آرز داریم نگام که اون قومی ها نوز مبونسند رو یفتای قبول داریم که دیگه قبول نداریم این شیخ بوده که در تهذیب استفسا روایات ما تا و سعی کرده بین نونا جمع بکنه منم کلاران هر سن خدمتون هشتاد درصد روایاتی که الان ما معارض میدونی توسط شیخ آمده اصلا قبل از شیخ دا سانسور شده م یعنی نه در کتاب کافی وجود داره نه در تقیی وجود داره اصلا کلا از خامو نره هر چیزی دو بیدید از کتابهای دیگر مرمون شیخ توسی. از مثلا نواده از یونس دیگر برگاش و بگفت اونا معارض هست یعنی اگر شیخ توسی نبودن ما اصلا خبرت معارض نمیشید ما خلفت معارض اصلا کی رفتیم اصلا و الان هم برگر از اون سره خطیه ایگه میشه باز معایزاد جدید پیدا فیلو بکنید. یعنی چیزایی که شیخ هم هست کرده شیخ هم ده بود ما توضیح این مطالب رو با شواهد تاریخی در این بسان کراه نهز رو دارید. پس بنابرای این خوب ما معتقدم خوب بود ملا محمد علی نیست رو در جه این سرسله اینا رو بدن تحلیل میکنه که مطلب چی بوده چرا سید مرتضی بعد از تعارضو مطرح میکنه این یک قسمت داستان داغوره گویا که اونم رو در انزلی میاد هر شب اون از زمانی که روضوار در انزله درگذشته غالبا چون فکر تعارض تو ذهنش بود وزنه شو ترجیح هم داره هم برمیگرده ما در همون دوره اول مفصل شواهد داخلی و خارجی اقامه کردیم که این روایت در ترجیح نیست کلا هست که حالا تعدیه از این روایت در حمیدال هجهن هجن. الله و جنس. یه روایت تو این مقامه میگه دو روایت از شوانه از توی ما میخواهیم یکی خودت بیشنیست مثلا بحث تعارض نیست بحث این نیست که من بحام ترجیح بدم عهده ما بردیگر یعنی هر دو یکی خجم هست یکیش نیست وده اشتاق را نادر فیلن از مجمهده بحث بفی تو به بحث این روی باید که فیلن فهم... این سطحی مجموعه مجموع احتمالاتی که در هر کلمه خواب و الفلام و و نیزنی. اضافی است اما ما لاروی بفی اضافی نیزنیم نسبی نیزنی. یعنی اون مجمعه حبر مشروع فی نقصه حکیته کار نداریدی محارز داری یا محارز ندارید تو اندال مجمعه لاربیفی رو نبیدین حسیلی که نراد کردن لاربیفی اضافی ما لاربیفی حقیقی گرفتیم لاربیفی هم اقلالی نه عقلی نه شرکی احتمال ها زیادی رو همین نیست اندال مجمعه لاربیفی از کلمه تغییرن احتمالات معبولش رو حضور 120 تا احتمال ذهب کردیم از اول کلمه هر یک مقدار فرم در مجمعه لا ری و به نظر ما این تعلیل از حکمت نیست مراد از مجمعه هم مشهور از اجمع نیست علف لا محدد ذکریست الا آخر احتمالات دیگران جا چیم ترست و این لا ری بفید یعنی خبری که مشهوره در اقلال خود جمعه این باید و این اصلا ناظر به مقام ترجیح کلن نیست خود عام هم که این ترجیحات رو دادن به نظر ما خیلی فنی نیست یعنی اینها اگر مثل کسایی که قائل بردم و حجیه دنبال شواهدن پس نباید تا آوز مطرح بکنن ترجیح مطرح بکنن بگن خبری که این شواهد هست حجت از اون خبری که نداره حجت نیست مناسبش اینه اگر دنبال شرواط نیستن دنبال میلیار حوزیت خیلی خو میلیار حوزیت به حاضر باشه هردا هست که از ت باش چه ته چه نوعفض چه نوعفض که ترجیح بود و نهوار دارم چرا اعرف کردم. بعد از این کل که عام یا حتی خاصه ما در محام رف ف آوض در حقیقت رفی تارز نمیکنه که این ها مشکل علمی داره میخواد مشکل علمی شه بود علم. <تصفيق> نه رو واقعی بکنه ما به دنبال خبر به فشور واقع هستیم نه اینکه من یه مشکل دارم به هر نحو ممکن مشکل حل بکنم این ترجیحات اعتباری حل مشکل علمی شخصه نه تحن سنت رسول الله بعد یک آدم هی که که کار بکنم یک کم اینجا بیشتره یکی نوجه پس بنابرای در قصد کنیم این اشکالات مولا محمد این استرابادی اجمالا هست اما این راه حلش نیست راه حلش ریشیابیست بلکه ما معتقدیم در میان فقه شیعه حدیث شیعه اضافه در این مساله که عرض کردیم راه حلش اینه که ریشه های تا آرز رو پیدا بودن چرا تا آرز پیدا شد این تعارض از کجا آمد منشه این تا آرز بود که ما بتونیم برخورد رییشه‌ای باش بکنیم نه این مسئله ترجیح که اینا گفتن مطرح میشه چون غالبا ما میتونیم چیزی در حوزه درصد تعارض رو بدون اینکه نوبت به تعارضات حلش بکنیم اصلا نوبت به تعارض نمی رسه این توضیحات ما در محل خودش گفتیم هرچند با واسطه فقهی از چندین تا اصول لذا یک مرگار مسائل ایشان درسته اما نه که و نه که آنستان یک راحل درست و حسابی را راقی را علمی ارائه دادن و این که بگن اگه کسی این گفت کافل است و تخلیب این مسئله هم درسته. نیست روشن شد ایشون خیلی همی میگرفتن که علامه متعصر از با آمده. این درسته. این نه برمده از علامه به که زمان شهر سوسی و سوسی نه خرد بشه که خرد نه و دوم و سبور روما ما اول از اولش نگاه بکنید از دوره نگاه تا الان یک نهاله. برخورد علمای ما، برخورد بزرگان ما، برخورد معرفین ما، برخورد زوایای ما. پس وانو این یه مرزداری شده. در اونجایی که دو در سر در سر در سر در سر از مشکل رو گفتن، از اون که درصد جواب، خیلی از جاهات کار عقب افتاده و ولی اینکه گفتن که کار کردند یا حاصل نمیشه، اینا نیست. اون مَحلَب ظاهرش با ایشانه اما اون ظاهر مشکل حل نمیکنه ما مشکلن درست میکنه چون شاد الله علیه الظهر اخیرش میگه این مشکل درست نمیکنه و اعتقاد بینرا هم خلاف دین نیست خلاف شریعت نیست مشخصه مذهب نیست که ایشان فرمودن پس می بحث سر وقت گذشت و اصلا شد صلی الله